هچند که از گناه بدبختم و زشت نومید نیم چوبت پرستان زکنشت اما سحری که میرم از مخموری میخواهم و معشوقه چه دوزخ چه بهشت می خوردن من نزد برای تربه است نز بحر فساد و ترک دین و ادب است خواهم که زبی خودی برارم نفسی می خوردن و مست بودنم زین سبب است گویند که دوزخی با بدمردم ماست، قولیست خلاف دل درونت وان بست، گر آشق و ماست دوزخی خواهد بود، بردا باشد بهشت همچون کپ دست. گویند مخور باده که شعبان نرواست، نه نیز رجب که آن مه خاص خداست، شعبان و رجب ماه خدا هست و رسول ما در رمزان خوریم کان خاصه ماست.